سور صافات هم سورهای مکی هست مطالبش هم مطالب ایمان اعتقاد یقین و باور هست و سور صافات هم مثل سور یاسین بر سور سبا مرتبه در سور یاسین داشتیم که خدایان مشرکین وقت نتونست اونها را از عذاب نجات بدند حال در سوره صافات ما میخونیم معبودانی که مشتکین اونها را معبود میدونستند شفی میدونستند خود اونها هموارد در دربارگاه الله از و جل اظهار عجز میکنند ببینید در این سوره عجز سی گروه بیان میشه اول عجز فرشتگان و صافات صفن فزاجرات زاجر همه صف بسته گوش به فرمان پروردگار پس اینا چطور معبودند که اینها خودشون صف بسته برای خدمت خدمت خدماتی که خدا بهشون دستور میده بعد در همین سوره عجز انبیا هم میاد انبیا هم آجز انبیا مشکلاتی داشتن از خدا حاجت خواستن خدا مشکلاتشون رو حل کرد در همین سوره عجز جنات هم میاد عجز جنات هم میاد پس وقتی که هم بیشتر این سه گروه و سقش را مردم عبادت می کرنن. یا فرشتگان را مشدکین مکه یا جنات یا بندگان مقرب و خاص سه خدای عزیز و جل. وقتی هر سه گروه اینجا ذکر میشن که به در مقابل پروردگار آجزن پس کی می تونه غیر از خدا مشکل شما را برطرف کنه چرا دنبال مخلوق خدا شما افتادید لذا در این سوره خلاصه سوره را از میکنم ابتدای سوره بیان عجز فرشتگان بعد از عجز فرشتگان عجز جنات که جنات حتی میخواند از آسمان خبرکشی بکنند چطور به وسیله شهاب ساقب زده میشند شلیک میشه بسیار اونها فرار می کنند و بعد از اون تخویف و تبشیر بیان میشه بعدن ذکر هفتن از انبیاء الهی در همین سوره است. انبیاءی که مشکلات برای اونها آمد اظهار عجز و نیازبندی در آخر صورت دوباره عجز فرشتگان و عجز جنات میاد آد بس وقتی که این مخلوقاتی که مردم دنیا به عنوان معبود انتخابشون کردن اینا آجز بودن که می که معبودی برای انسان قرار بگیره غیر خدا الله حال ملائکر بیان می وصافات صفن زمن اینکه از فرشتگان اینجا به عنوان گواه ذکر شده سوگند به فرشتگان یعنی اونها را گواه گرفتن زمن که اونها را به گواهی گرفته خدای تعالی عجزشون هم بیان میشه که همه صف بسته هستن گوش به فرمان پروردگار صف بسته هر وقت خدا میگه این کار بکنی فورا انجام میدن بس خادما مخدوم نیستن و صافات سفن سوگن به اون فرشتگانی که سف بسته هستند سقف بستنی فزاجرات زجرن سوگند به اون فرشتگانی که اونها چی میکنند اونها از کنم که از عذاب خدای عزوجل انسان ها را دور میکنند یا به از گناه و از معصیت به وسیله عذاب ببین عذاب در واقع زاجر هست یعنی چه دور کننده از نافرمانی یعنی اون فرشتگانی که معمول عذاب هستند معمول سختی ها و مشکلات هستند قحط میارند زلزله میارند مصائب دیگه میارند فتالیات ذکرند پس سوگن به اون فرشتگانی که دنبال میکنن ذکر الهی را یعنی قرآن را قرآن انا از القرآن ولقد قد يسرن القرآن لذکر للذكر ذکره ذكر لذا یعنی انواع فرشتگان چه فرشتگانی که صف بستن امور را انجام میدن چه فرشتگانی برای عذاب و برای توبیخ و برای ترساندن هستند چه فرشتگانی که حاملان قرآن هستند حاملان وحی هستند و مامورین هستند در مسائل شریع همه اینها گواه هستند که ان الهکم لوahid معبود شما معبود یگانه است خب این معبود گانی کیه معرفیش کنید رب السماوات والأرض وما بینهما و رب المشارق رب آسمانها رب زمینه و رب ما و رب مشارق مشارق که گفته شد مغارب هم خود بخود میاد یعنی رب مشارق و مغارب شما قبلا خانی رب المشرقین و رب المغربین ابن عباس رضی الله عنهمای فرماید که هیچ روزی دو روزی نیست که خورشید از یک جا طلوع کند هر روزی از یک زاویه طلوع می کند بنابراین سی و روز سی و پنج روز که هست از سی و پنج جا طلوع می کند در سی و پنج محل غروب می کند پس مشرقی یکی نیست دو تا هم نیست زیاد هستن رب المشارق والمغارب اِنَّا زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِینَةِ نِلْكَوَاكِبِ ما مزین کردیم آسمانها را با زینت ستارها آسمان واقعاً باوجود ستارها چه زیبائی داره چه درخشندگی داره چه نوری داره چه رونقی داره الان ما دیدیم برای ما عادی شده برای انسان وقتی که عادی بشه بهش فکر نمی کنه. تازه این مناره ها و گمبد را وقتی که نور پردازی کردن شبه های اول و دوم همه مردم به زده بودند و همه مردم چقدر تماشا می کردن چه لذتی می بردن الان یک ما می ذره دو ما بعدن عادی میشه هیچ که نگاه نمی کنه مگر کسی از بیرون بیاد و حیرتش بیاد لذا این آسمان را با این پهنائی تمام چراغانی شده و نور پرداشتی شده چه نوری نور افکانهای ما از این تا ده کیلومتر بیشتر نور نداره این هزاران کیلومتر از اونجا نورشون را تمام دنیا تماشا میکنه کنه و بالخصوص شبیه که شما اون شب محتابی نباشد شما بیرون تشریف ببرید جایی که این لامب های عارضی هم نباشند تماشا کن آسمان را انسان اصلا روحیه میگیره اعصاب انسان راحت میشه از بس که زیبایی بیند لذا الله فرماید ان زیننا السَّمَاءَ الدُّنْيَا همانا ما آراست قدم آسمان دنیا را به زینت الکواكب با ستاره ها وحفظا من كل شيطان مارد و آسمان را حفظ کردیم از هر شیطان سرکش ما این بحث را قبلا خواندیم هم در سوره جن هم در سورات دیگر که از وقتی که وحی آمد و وحی بر آخرین پیامبر آمد شیاطین جنی تلاش بی که در آسمان ها دست بردی داشته باشن خبرکشی بکنن خبرگیری بکنن همیشه علت این خبرچینی و خبرکشی شیاطین اینه که به اون شیاطین انسی که اونها را تابع قرار دادن به اونها اخباری بدند بعضی از تصمیماتی که اونجا گرفته میشه فرشتگان با هم دیگه بحث میکنند که امروز باید چه کاری انجام بدیم چه وظیفه فردا بشه چه وظیفه پس فردا بشه همونطور که یک مجموعی کارها را بین خودشون تقسیم میکنند اونجا فرشتگان بین خودشون ابلاغ میکنند جنات میره استراقصم میکنند تا من چیزهایی بعدن به کسانی از انس که اونها را مسخر کردن اخبار را میارن. اینا باز پیش مردم ادعای غیب میکنند و ادعای خدایی میکنند به این صورت مردم را گمراه میکنند بنابر این تعیین شده تعیین شده در میان ستارها از وسط ستارها شلیک هایی که به سوی این جنات میشه این وقتی که می زنه اون جن پودر میشه از بین میره یا اینکه دیوانه میشه در حدیث آمده اگر یکی دوتا نجات بیاوه یک خبری میاره این خبری درستی هم برای امتحانه در حدیث احمدی 99 تا دیگه دروغ باش همراه میکنه اون کسی که مردم را فریب میده اون یکی را به مردم میگه مردم اعتقاد میکنه بقیه همه دروغارم هم تعویله مردم میده لذا ان حضرت فرمود اینایی که اخبار غیبی میدن باورشون نکنید پیششون نروید صحابی پرسید یار رسول اللہ در جاهلیت بعضی از ما پیش کائنها میرفتند کائنها اینهاي که جنار مسخر کردند و اخبار غیب می دند رسول الله فرمود فلا تعتهی دیگه شما نری دنچا لذا کسی گمشدهایی داره کسی مشکلی دیگه داره پیش اینها نره صبر کنه به خدا اعتماد بکنه اینا کاری از دستشون بر نمیاد قرآن میگه ازallah میفرماید و حفظم این نازیان نسماء اد دنیا بزینت نل با زینه ستاره ها آراسته کردیم و حفظا من کل شیطان مارد و همچنین حفظ کردیم از هر شیطان سرکش لا يسمعون الى الملئ الاعلا انها گوش نمی به اون ملئ اعلا نمی گوش کنن لا يسمعون یا لا يستمیعون اکسرا نمی گوش کنن و یقذفون من کل جانب از هر جانب از هر جهت زد می شوند دحورا یعنی تا با خفت و خاری رانده بشند دحور بنا زده میشنن تا رانده بشند و لهم عذاب واسب برای اونها عذاب دائم هست الا من خطف الخطف مگر کسی بروباید ربایشی را ایک خبری را بروباید یک چیزی گوشش افتاده فرار کند اون را بیارد فا اتباعهو شهابون تاقیب او را هم تاقیب میکنه شهاب روشنی یعنی جرقه روشنی بعضی بر قرآن اعتراض کردند قبلا هم گفتم که چطور ستاره را میزنند به یک جنی که در مقابل مخلوقات فقللی هست. عدد این ستاره از زمین بعضی ستاره ها بزرگترند. نگفتی قرآن ستاره میزنه؟ کسی که این فهمیده خوب نفهمیده. از وسط ستاره از درون ستاره یک ای هست. امروز هم دانشمندان، قبول دارن که اس ستاره های مختلفی گایی شهاب، سنگ خارج میشه گایی آتش ها و گازاتی خارج میشه که حقیقت این گاز را اللہ میدونه اینها را نتونستند که تحقیق بکنند فقط میدونند که اینها هر چیزی را بخورن از بین میره ولی تاکه زمین نس فرسنگ ها از زمین دور میشه اون از بین میره اثرش خب اینها چی هستند یه روز به نتیجه میرسن که اینا رو خدا چرا دستور میده از اونجا شلیک میشن فاستفتهم اهم اشد خلقا ام خلق نه از اینها سوال بکن آیا اینها سخت هستن هستند از نظر پیدایش یعنی بهتر خلق میکنی یا اونی که ما خلق کردیم اینا خلقناهم من طین اللاذب ما این انسان را از چی خلق کردیم از گل چسبنده. اعرض کردم گل زیاد تو آب بماند یه حالت چسبندگی پیدا میکنه. ما یه جایی رفتیم مردم معم پشت بام های خودمون را ایزوگام میکنیم و غیرگونی میکنیم به خاطر اینکه آب نفوذ نکنه. اونجا چیکار میکنیم خاک مخصوصی البته بود این خاک را تو آب میگذاشتند، گل درست میکردن دو ماه سه ماه این گل بود تو آب بود هر دو سه روزی آب می دادند بعدن یه حالت چسبندگی و پلاستیکی پیدا می کرد این را وقت پشت بام می زدن این گلش را اصلا آب نفوذ نمی از ایزگام ما بهتر می شد لذا خدای عزواجل مدتها خاک را گذاشت تو آب چون ما یک جا داریم انسان را از خاک آفریدیم یه جا داریم از گل آفریدیم اینجا حدید گل چسبنده آیه دیگه هست که همه این مصنون گل سیاه متعفن و بدبو معلوم میشه که این گل و آب خاک و آب اینا با هم مخلوط بشن البته از نظر اسباب خدا بدونی اسباب آفرید به نوعی ماده حیات تویشو میاد زندگی میاد تجربه بکن یه جایی که خاک باشد شما آب زیاد بریز آب زیاد بریز بعدا یه چیز روش بذار که همین نم بماند تا چند وقت یک سنگ بزرگ بذار بعد مدتی سنگ را بردار ببین چقدر حشره درست شده چقدر موجودات جور واجور درست شده خدای تعالی در این گل و آب که با هم تا مدتی بماند یک خاصیتی گذاشته انسان درک نمیکنه. یه خاصیتی گذاشته خاصیت حیات زندگی الله تعالی می فرما ما انسان رازین گل چسبنده درست کردیم چسبندگی زمانی پیدا میشه که دوام بیابد همراهی آب و خاک لذا الله می فرماید بل عجبت و یسخرون بلکه در واقع شما تعجب کردی از انزال قرآن بل عجبت من ما نزلک علیک من القرآن این قرآن عجیب قرآن زیبا که حقایق را چگونه خوب بیان میکنه شما از این در شگفت هستید اما اونها مسخره میکنند بل عجب تا اسخرون و اذا ذکرون لایت کرون هرگا پند داده بشوند پند نمیگیرند و اذا رأو آیتن هرگا یک آیه و یک موجز ببینن یستسخرون مسخره میکنند و چه می گوین موجزه را چه توجیه می مثل فرعون وقالو ان هذا الا سحر مبین می این نیست مگر جادوی آشکاری هست اذا متنا و کنا ترابا و عظاما آیا ما وقتی که بمیریم تبدیل بشیم بخاک و استخان انا لما بعوثون آیا دوباره زنده می شیم و آو آباؤنال یا پدران اولین ما دوباره زنده می شون اللهم افهمه قل نعم بگو بله، البته که زبان شما زنده می شید وانتم داخلون اما شما زلیل می شید یعنی شما ایک انکار می با زلط زنده می شید فا هی زجرت واحده چطور زنده می شید واحده یعنی یک فریاد است فقط فریاد فریاد که اصلافیره با یک فریاد زنده می شید فا هم در این هنگام همه بلند میشن اطراف را نگاه میکنن و قالو اونجا متوجه میشن بعد از زن اینکه زنده میشن و قالو یا ویلنا هذا یوم الدین میگوین ای وای آي بر ما حسرتان این را میگن تاسرا میگن این پس روز جزاست این همون روزی که پیامبران میگفتن دعوت گرا میگفتن همون روز هذا یوم الفصل الذی کنتم به تحصیلون به اونها گفته میشه بله این روز روز فیصله است همون روز فیصله که شما این تکذیب میکردید شما باورش نمیکردید لذا الله دستور میده که احشرالذین ظلموا و ازواجهم جام کنید به فرشتگان میگه جمع کنید برای من کسانی را که شرک کردند آلذین ظلموا کسانی که در دنیا شرک کردند و ازواجهم یعنی هم کیشان اونها ازواج زنها نیست مراد هم سالهم انواعهم اشباههم کسانی که مثل اونها بودن یعنی مثلا رؤسای کفر و مریدانشون را تابعانشان را کسانی که خط اونها را می‌خواندند جمع کنید همه را و ما و یعبدون و همچنین جمع کنید اونهایی که اونها را عبادت میکردند، من دون الله جز خدا چه غیر از خدا عبادت میکردند؟ همه را جمع کنید فهدوهم الى صراط الجحيم راه نمائیشون کنید بسوی راه جهنم میبرند برند همه عابدان و معبودان را رؤسای کفر و همچنین بطایشون را اونها را میبرند تا متوجه بشن که چقدر ذلیل بودن اینا اینا را عبادت میکردن و بعد خدا می فرماید وقفوهم وقفوهم یعنی انها را توقف بدید ایستشون بدید یک مدتی میگن صبر کنید به سوی جهنم برده میشن بعدا میگه صبر کنید میستان مسئولون اینا مورد سوال واقع میشن مورد بازخات از اینها سوال میشه سائل خدا سو اونها مسئول میشن خدا میپرسه مالکوم لا تناصرون شما در دنیا ادعا کردیم کردی می گفتیم ما هم دیگر را کمک شفی سفارش کننده چی شده الان هم دیگر را یاری نمی کنید داده هم دیگر نمی رسید بل هم اليوم مستسلمون الله می امروز بلکه انها همه تسلیمند مستسلمون یعنی منقادون همه تابع, تابع منقاد چیستم؟ منقادون لیلعذاب یا بعضی میگن مستسلمون یعنی مخزلون امروز همه رسوا سرهایشون پایین و بعد به هم دیگه هم دیگه را ملامت میکنند به جایین که به خداوند پاسخ قانه کنندهی بدن هم دیگه را ملامت میکنند تابعان و مریدان رؤسایشون را اون اربابان کفر و شرک را اون رهبران شرک را رو هربینه شما ماره گمراه کردید و اقبل بعضیم علی بعضی می تسألون رو بر رویش هم بعضی بر بعضی که از هم دیگه سؤال میکنن میپرسن قالو اینکم کنتم تعتونان عن اليمین ثابتان میگن همانا شما بودید پیش ما آمدید عن الیمین عن الیمین بعضی میگفتن یعنی از رای خیر خایی بعضی گفتن یمین چون یمین به معنای راست است قوت دست راز قدرت دار یعنی شما با قوت پیش ما می آمدید با اطمینان می گفتید راه ما راه درسته عن الیمین قالو بل لم مؤمنین این پیرانشون جواب می دند متبوعانشون رؤسایشون می گرنم مگه ما زور شما رو گمراه کردیم خود شما مؤمن نبودید قالو بل لم تکونو مؤمنین شما مؤمن نبودید ما هم کاری نکردیم و ما کان لنا علیکم من سلطان ما هیچ نو تسلطی بر شما نداشتیم بلکه کنتم قوم انتاغین شما خودتون قوم سرکشی بودید شما خودتون سرکشی کردید چرا ما را ملامت میکنید فحق علینا قول ربنا امروز قول پروردگار یعنی وعده پروردگار مراد وعده پروردگار بر ما اثبات شد خدا وعده کرده بود ما را ازام میده الان داره میده این الازائقون ما باید بچشیم ازاب را علت چرا مارا میکنی ما را ملامت میکنید فاق ویناکم ما شما را گمراه کردیم چون اناکن غاوین خود ما گمراه بودیم خود ما چون گمراه بودیم لذا عله ما را ملامت نکنید در آیه دیگر شیطان میگه که فلا تلومونی ولوم انفسکم ما نچرا ملامت خودتون رو ملامت کنید چرا پشت سری من اومدید اینا همونه میگن را ملامت نکنید چرا پشت سر محمدی؟ ما خودمون گمراه بودیم یه چیزی به شما گفتیم شما چرا دنبال کردیم ما؟ الله میفرمه فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ همانا آنان یعنی تابعان و متبعان در آن روز در عذاب مشترک هستند همه شریکند اِنَّا كَذَلِكَ نَفَعَلُ بِالْمُجْر الله می فرماید ما این گونه با مجرمین برخورد می کنیم ما این گونه با مجرمین رفتار می کنیم خب این مجرمین گناهشون چی بود چیکار کردند ببینید بزرگترین جرم در دنیا شرک همه قابل بخشش به غیر از کفر و شرک الله می فرماید انهم کانو اذا قیل لهم لا اله الا الله این ها بودند هر گاب این گفته می لا اله الا الله هیچ معبودی لایق عبادت نیست بجز الله یستکبرون تکبر می کردند گفتند فقط یک خدا نه نمیشه شید و یقولون می گفتند اینا لشاعر مجنون علیہ عزباللہ برسول اللہ چی می گفتن شاعر دیوان می گفتند آیا ما ترک بکنیم خدایان یعنی خودمون را به خاطر شاعر دیوانه؟ الله می فرماید شاعر دیوانه نبود بل جاعب حق حامل پیام حق بود حق با خود آورده بود و صدق المرسلین یعنی پیغمبری ما بود نه شاعر بود نه مجنون بود تمام انبیای گذشته را تایید میکرد یعنی چه یعنی پیامش موافق انبیای گذشته ببینید یکی از دلائل صداقت رسول الله اینه که هماهنگ با همه انبیای الهی هر چی انبیای گذشته گفته اینم همونه میگه و صدق المرسلین لذا شما اونجا از ایشون تبعیت نکردید امروز انکم لذائق العذاب الالم شما چشنده هستید عذاب دردناک را و ما تجزونه الا ما کنتم تعملون به شما جزا و پاداش داده نمیشه مگر آنچه که عمل میکردید یعنی بر اساس عمل کرده خودیتون خدا شما رو پاداش با. الا عباد الله المخلصین خداوند میفرماید این الا استثناء منقطع است لیکن مگر بندگان برگوزیده برگزیده ما استثناء هستند بر بندگان برگزیده اونایی که خدا اونا رو برگزید برای دین و ایمان و توحید اونایی که یکتا پرست بودند اونایی که همه چیز پرست نبودند اونها مثل شما مجرمین نیستند اون بندگان برگزیده در چه وضعیتی هستند الله بیان می‌فرماید اولائک لهم رزق معلوم این افراد برای اونها رزق مشخص است یعنی نعمت های مشخصی الله برایشون تعیین کرده فواکه یعنی انواع میوها و هم مکرمون و اونها در اون بهشت مورد اکرام واقع می شوند فی جنات النعیم در جناتی که اون جنات, جنات سراپا نعمت است علی سرور متقابلین بر تخت های روبروی هم طاف عليه بسم معین یطافو یعنی بر اونها میچر خ دور می زند میگرد می جامی از شراب خالص معین شراب خالص بیضا سفید لذت للشاربین باعث لذتی کسی که بنوشد لطف و لذت میبرد اون شراب را که بخورد. مثل شراب دنیا نیست لا فيها غول در اون غول نیست غول یعنی سکر نشگی در اون شراب از کنم خماری نیست نشهی نیست ولا هم عنها ینزفون و نه از اون شراب سر درد می میگیرند ولا هم ینزفون ببیند شراب دنیا چند خصلت داره چند تا ارز کنم صفت داره یکی اینکه شراب دنیا رو هر که میخوره نشه میشه عقلش را از دست میده خیلی وقتها هستند همین افراد با هم درگیر میشن چیزهای دریوری میگند اصلا هرچی که به چون که به عقل خودشون هیچ تسلط نه عقلشون را از دست میدن این سکر را اون شراب آخرت نداره دوم شراب دنیا صداع داره درد سر میاد بعضی وقتا خیلی افراد هستن که از حد بیشتر میخورند نه تنها درد سر میشن بدنشون داغون میشه خیلی ها خونریزی معده میکنند میشنوید گاهی جامهای های از بزم های شبانه شراب هستند متاسفانه بعضی جوان ها مصرف میکنند تو این شعرهای بزرگایی تو اخبار میاد که سی تا جوان مسموم شدند بیش تا مسموم شدن. بیبی مهارستان سرشون نفتاد چهار تا مرد پنج تا مرد این از کنم که اثرات شراب دنیا است که هم سکر میاد و هم مشکلات جسمی میاد درد سر میاد لذا ولا هم یونزفو منشینه که درد سر اونجا نیست و سقم شراب دنیا کئی داره بعضیا خیلی میخوره بالا میزنه و بعضی ها از کنم چهارمین چیز بول یعنی انسان کنترل خودش را بلا نسبت کنترل دستشیره هم از دست میده خیلی ها که مبالغه میکنند دیگه مثل یه بچه نمیتونن خودشون را کنترل بکنند حضرت استاد رحمت الله علی مولانا جاجروی می فرمود که در اون زمانی در پاکستان اون زمانی که نخصفزیر زلفغار علی بوتو بود گفت یکی از افسران نزدیک به ایشون گفت با من همی جای ارتباط و محبتی داشت دوستی داشت یک روزی تعریف کرد گفت یکی از مقامات اون زمان ایران سفری کرده بود به کویته پاکستان و بو تو اینجا آمد در کوهته ازش پذیرایی کرد گفت ما بلاخیر کارهایشون رنجام می دادیم و شب همه چیز شام و بسات و هرچی بود برایشون آمده کردیم شراب زیادی هم بود صبح وقتی که ما رفتیم که تمیز بکنیم نظافت بکنیم دیدیم که اینها چنان خورده بودند که حتی کنترل وضویشون رو هم از دست داده بودند میگه تمام اتاق بوی گند بود که ما تحمل نکردیم. لذا اینطور طور هست گاهی شراب کسی میخورد کنترل در را رابطه نسبت هم از دست میده. پس این چهار چیز در دنیا هست. یک سکر دو صداع سردرد سه قی استفراغ چهار بول و اینها در شراب بهشت نیست. الله می فرماید لا فيها غول در اونجا مستی و نشهی نیست ولا هم عنها ينزفون و از اون شراب اونها سردرد هم نمیگیرند و عندهم قاسرات الترفعين نزد اونها زنهایی هست که نگاهایشون پایین هست عین چشمهای درشت دارند یعنی چه؟ یعنی هم زیباست نگاهشون پایین نگاهشون پایین قبلا ما خاندیم یعنی اونها دلداده شوهر هستن بغیر از شوهریشون کسی دیگر نمیبینند. که آنها مکنون خداوند در زیبایی تشییج میده، تشییج میده در زیبایی به بیه مکنون، بیه مکنون را بعضی گفتند مرواریدی که پوشیده باشد. اون لوی اون مرواریدی که ببینید مروارید بسیار حساس، خیلی درخشانده است. وقتی که اون ظاهر باشه چنان درخششی هر غباری که برو بشیند خودش را نشون میده که اینجا خاک روش نشسته وقتی که مرواری در غلاف باشد و اون غلافش را دور بکنی چه درخششی داره چه زیبایی داره این زنها در در از نظر درخشش و زیبایی مثل اون هست اما بعضی میگن بیز همونطور که در عربی بیز بمعنیه از به خدمت شما تخم مرغ هست به همون معنی تخم مرغ هست اما تخم مرغ مکنون کدوم تخم مرغه کدوم پرنده یا مرغ هست که تخم خودش را پنهام میکنه این مرغای خانگی بیچاره که ما میبینیم اینجا هر جا تخم بیندازه میره باشکار نداره اما بعضی ها هستن مثل شتر مرغ میگند شتر مرغ هر جا تخم بیندازه اون تخم خودش را تو ریگه ها مندازه بعد دفنش میکنه مخفیش میکنه میگوین مراد اون بیز و نعام هست اللهم بیزاوی اینا نوشته تخم شطرمر مراد است. ببین تخم شطرمر چیش هست ما که زیاد ندیدیم اونطوری که تو کتاب ها نوشتند رنگش سفید سفید نیست سفید مایل بزرد هست این کارشناسان میگویم بهترین رنگ در پوست انسان ها سفیدی که مثل برس و مثل برف و مثل پیس باشد اون سفیدی زیاد زیبانی است اون سفیدی که مایل بزردی باشد ما در فارسی بهش میگیم گندمگون سفیدی تمایلی بی چی داشته باشد به گندم داشته باشد لذا می‌فرماید که این بهترین رنگ پوست است. خدای تعالی اون زن‌ها رو گفته که سفیدیشون مثل اون بیز النعام هست یعنی گندمگون هست. شبّههن به بی بیز النعام. علامه بیضاوی میگه تشبیه داد خدا اون‌ها رو به تخم شترمرغ المذیون عن المسون عن الغبار. اولا چون مخفی است زیر خاکش کرده، غبار روش نیست فی السفائی والبیاز، المخلوط بی ادنی صفره که با ذره زردی همراه هست، مخلوط است. فهینه احسن الوان البدن، بهترین رنگ بدن همین رنگ گندمگونی هست والله علم، که انهن بیض مکنون از نظر پوست، از نظر سفیدی، از نظر زیبایی الله می فرمه این بهشتی ها با هم دیگه اونجا مشغول صحبت هستند. فا اقبل بعضهم على بعضی یتساءلون رو برو بعضی بر بعضی از هم دیگه سوال میکنند یکی از این المجلس چی میگه؟ یک جلسه ای خدا تعریف میکنه، هزاران جلسه مثل این قال قائل منهم اني كان لي قرين یکی از زمینا میگه من تو دنیا یک دوستی داشتم همسایه‌ای داشتم اون همسایه‌ من غیر مسلمان بود قیامت را قبول نداشت همیشه به من میگفت یقول ااینک لمن المصدیقین و من میگفت که تو تایید میکنی تصدیق میکنی قیامت هست من قبول میکردم اون قبول نمیکرد و او به من چی میگفت ایدامتنا و کننا ترابا و عزاما ما بمیریم تبدیل به خاک بشیم تبدیل به استخان پوسیده بشیم ایننا لمدینون مدینون از دین هست مالک یوم الدین ما جزا داده میشیم؟ دوباره جزای میاد کی گفته ممکن نیست اون رفیق من در دنیا انکار می کرد قیامت را به من این طور می گفت. الان به این دوستانش که این تو بهشت با, با هم صحبت میکنند میگه شما ببینید تو جهنم نمیبینید قال حل انتم مطلعون شما سرک نمیکشید اطلاع میگویند سرک کشیدن که چیزی رو میخواد ببینی فطلع خودش سرک میکشد یعنی گردنش رو جلو میده اون دوستش رو میبیند فراه و فیساد سو الجیم وسط جهنم می بیند اونجا در میسوزه جان میده ببینید اولین سوعال اینجاست که بین بهشت و جهنم خیلی فاصله هست چطور با این همه فاصله دور اونها هم دیگر را می بینند ببینید این مسئله یکی از مسائل اخروی هست در قرآن هم نیامده که چطور هم دیگر را میبینند ما هم نمیتونیم کیفیتش را بگیم فقط این قدر میگیم که ببینید دنیا امروز چقدر پیشرفت کرده شما اینجا نشستید برادرتون عزیزتون دوستتون در امریکا نشسته با هم صحبت میکنید هم هم دیگر را میبینید هم حرف هم دیگر را میشننید امروز دنیا به اینجا رسیده یا نرسیده به واسطه امکانات جدیدی که صوتی تصویری مردم صحبت می کنند مشکلی دارد نداره این امکانات ضعیف دنیاست آخرت را که خدا چنان تعریف میکنه که نسبت به دنیا قابل مقایسه نیست پس قطعا هر وقتی اینطور معلوم میشه از این آیه و آیات زیاد دیگری که هر وقتی اهل بهشت بخواهند تو جهنم به قول مجازی ها سرچ بکنند ببینند بی بگردند بی راحت نگاه میکنند هر کسی را به پیدا میکنند کاری برایشون نداره با توجه به شرایط و امکاناتی که اونجا خدا برایشون چی کرده؟ پیدا کرده لذا همین جا اون طرف اون همسایه اون دوستش را میبیند تو وسط جهنم، از همین جا باش صحبت میکنه چی میگه؟ میگه ای دوست اے رفیق یادت هست؟ انکار می کردی قیامت را من تو شک می انداختی لذا فتلع فراهو فی سوائل جهنم قالت الله میگه سوگند به خدا ان که تلتر دین خودت تو جهنم افتادی الان نزدیک بود مرا هم هلاک کنی ان که نزدیک لتر دین که من حالا کنی من از بین ببریم من با خود جهن بکنی اینقدر این تو گوش من میخاندی ولی من کی نجات داد رب ولولا نعمت ربی اگر نعمت و فضل پروردگار من نبود بس اگر ما ایمان داریم نجات یافتیم این به فضل پروردگاره ولولا نعمت ربی تو من المحضرین البته من هم بودم از محذرین. یعنی منم با تو همونجا حاضر می شدم افما نحنو بمیتین آیا مم ما دیگه نیستیم بمیریم استفام هست تقریری بمعنی اثبات یعنی می که دیگه موت نه برای ما بهشتی نه برای شما جهنمی دیگه نمی میریم الا موتتنا الاولا مگر همون مرگ اولی که در دنیا آمد و ما نحنو بمعذبین ام به افما نحن بميتين الا موتتنا الاولى تو میگفتی که ما نمیمیریم مگر مرگ اولی همین مرگی که تو دنیا میاد و ما به بمعذبين ما عذاب داده نمی شوید. لذا ان هذا له هو الفوز العظیم این راستگاری بزرگی است که خدا به ما داد ما در بهشت هستیم لمثل فل عمل العاملون الله می فرمه برای امثال این باید عمل کنند عمل کنندگان حالا از ما میپرسد. از اذالک خیر نزولند این مهمانی و این پذیرائی بهتر است ام شجرت الزقوم یا درخت الزقوم ببین درخت الزقوم چه درختی هست بعضی درخت ها در بلاد عرب هست درخت های عجیب و غریب درخت که خیلی تلخند خیلی خار دارند بعضی ها به همون درخت ها گفته در منطقه ما نیست اکثر ترجمه های فارسی درخت زقوم را ترجمه کرده درخت زقوم اما بعضی ترجمه های اردو و عربی اسم یک سری درخت بردند اما تحقیق اینه که به صورت قط نمیشه گفت درختی از درختهای دنیا اون درخت زکوم هست خیلی از علماء میگن که این درختی هست که امثالش در دنیا وجود نداره این مال همون جاست درختی از نهایتا تلخ و خیلی هم خاردار و خیلی کریه المنظر درختی که ببینی واشت میکنی یعنی چند خصوصیت داره ببینی وحشتی تمام بدنت را میگیره چون خداوی عزا و جل بیفرماید که انها روس و شیاطین مثل سر شیاطین است سر جنات خ... یعنی کریح المنظر خطرناکه و دیگه خیلی تلخه خیلی خار داره که انسان که میخوره تمام درون انسان را پاره پورے میکنه سوراخ سوراخ میکنه نہ رودے میمانه نہ میدی میمانه اللہ میفرمایے ان ہا شجرت ہا اننا جعلناها فتنتا للظالمین این درخت زقوم را ما امتحانی برای ظالمین امتحان بود برای مشرکین مشرکین می خندیدا می خندیدا این چه درختیه که تو آتش سبز ہے ان ہا شجرت تخرج فی اصل الجحیم از اینجا معلوم میشه درق مال اونجاست تو دنیا نیست این درختی است که خارج میشه در اصل جهنم در وسط جهنم طلعها یعنی شکوفه آن یا از کنم گل اون که انه روس شیاطین جنا و که مثل سر شیاطین سر جنات ببینید تشبیه به چیزی باید داده بشه که ما دیده باشیم آیا از شما کسی سر شیاطین را دیدید هیچ که ندیده جنات سرشون چگونه هست پس چرا تشبیح دادم به چیزی که برای ما نامعلومه جواب دادم مفسرین گرچه ما هیچ یکی سر جنات و شیاطین ندیدیم اما یک تصوری هر یک از ما داریم یک تصوری وحشتناکی هر یکی تو ذهنش هست که جنات و شیاطین اینطور خطرناکن جولید مو هستند طراکند مو هستم ببینی وحشت میکنی لذا تشبیه داده به یک چیز وحشتناک تفسیر ابن کثیر گفته اینما شبها ها به رؤوس شیاطین و الا لم معروفه خدا اون شاخ و برگش را تشبیه داده به رؤوس شیاطین گرچه رؤوس شیاطین معروف و معلوم نیستند مخاطبین اما تو ذهن تک تک ما این نشسته لیانه قد استقرر فی النفوس ان شیاطین قبیهتو المنظر که شیاطین چی هستن شکل بسیار زشتو منزر بسیار قبیه دارن. لذا الله تعالى می فرماید از اون درخت زقوم می خورن فا منها می خورن چین دازم می خورن فمالئون منها البتون یعنی شکمهاشون را پر می کنند. از باس گروسنان از یک طرف تلخ از یک طرف خار داره ثم ان لهم عليها لشوبا من حميم بعدن قاتمی کنند شوب یعنی مخلوط با آبجوش روش دیگر آبجوش می ریسند ثم ان مرجعهم این پذیرایی اولی است بعدا بازگشت همه لا الالجحیم البته به سوی جهنم است اینا چرا جای در جهنم است إنهم ألف وأبائهم ضالين إنها يافتن بذران شأن فهم على آثارهم يهرعون نقش قدم وآثارهنها يهرعون هر عميق دوان دوان رفتن باشغور رغبة رفتن باشتياق تمام رفتن ولقد ضل قبلهم أكثر, الأول أكثر الأولين جمراه ك قبل زنها أكثر بيشين يند جمراه كردن کفار را کفار موجودین را اللہ می در درمیان انها هم ما فرستادیم ولقد ارسلنا فیهم منذرین، انذار کنندگان را فرستادیم فانظر کیف کان عاقبت المنذرين، ببین انجام و عاقبت کسانی که از عذاب خدا بیم داده شدن چی شد؟ خدا به عذاب گرفتارشون کرد الا عباد الله المخلصین مگر بندگان خدا بندگان برگزیده خدای عذاب خب ببینید ما تا حالا گرچه بیشتر احوال قیامت را خاندیم اما دو گروه را خاندیم یک گروه فرشتگان اول سوره خاندیم که فرشت، فرشتگان تمام گوش به فرمان پروردگار و گروه دوم جنات که جنات چطور آجزن میخوان خبرکشی بکنن چطور شهاب ساقیب اونها رو میزنن بس این دو مخلوق آزیست تو چطور میتونه معبود شما قرار بگیره خب گروه سومی که مردم اونها رو عبادت میکردن انبیا بودن از اینجا تا نزدیک به آخر سوره خداوند ذکر هفت تا پیغمبر را میاره هفت تا پیغمبر که این پیغمبران خودشون سراپا تسلیم پروردگار بودند هر کار می کردند تخطی و تخلف از فرمان رب نمی کردند. و در هر مشکل و حاجاتشون فقط خدا را صدا می زدند. ببین داستان نو با چی شروع شده؟ با دعای نوح، با ندای نو با فریاد نو نوح با اون عظمت 950 سال برای دین خدا تبلیغ کرد اما خدا را صدا می زد و لقد نادانا همانا ما را ندا میکرد نوح پیامبر نوح نبی فقط ما را صدا می زد فلانعالم مجيبون بهترین اجابت کننده هست الله وقتی که نوح ما را صدا زد نوح خودش نتونست خودش را نجات بده و نجایناه ما نجات دادم اورا و اهله و اهل متعلقین اورا من الكرب العظیم از مصیبت بزرگ مصیبت بزرگ چی بود؟ از یتو آزار کفار و جعلنا ذریته هم الباقین ما قرار دادیم اولاد نورا هم الباقین فقط انها را باقین در روی زمین ببینید هم الباقین کسانی که عربی بلاد حسن میدونه این هم ضمیر فصله آمده معنای حصر ایجاد کرد. معنای حصر اینه مفهومش اینه که فقط و فقط اولاد نو در زمین باقی ماندن اولاد بقیه کسانی که با نو نجات یافتند اولاد اونها و نسل اونها منقرض شد. نسل اونها چی شد؟ حضرت عبدالله ابن عباس در تفسیر این آیه هم روایت زک می کنند که تمام کسانی که بانو علیه سلام در کشتی بودند هفتاد نفر بودند یا هشتاد نفر همین حول و مردم گفتند اونا نسلشون ادامه نیافت نسل اونها منقرض شد تمام شدند بعد از اون فقط فرزندان نو بودند که نجات یافتند بانو و اولاد اونها ادامه یافتند لذا انسان هایی که امروز در زمین هستند در کره زمین هستند هر چی انسانه چه عرب چه عجمی چه سیاه چه سفید چه شرقی چه غربی همه اینها فرزندان نوح هستند نوح علیه سلات و سلام سه تا فرزند داشت معمولا سام حام یافث سام نسلش والله علم این اهل تفسیر نوشتند نسل سام تمام عرب ها و تمام اهل ایران اهل روم بنی اسرائیل اینا تمام از اولاد سام هستند ما را سامین میگن نه اینا تمام سامین هستند و حام فرزند دیگری حضرت نور نسل اون تمام این هندی ها افریقای ها حبش ها،, ها تمام این ها از اولاد و فرزندان حام هستند این ها رو حامیین و گروه سوم فرزند سومش یافس اولاد یافس تمام ترکها هستند و اقوام متعلق به ترک انها که بیشتر شمالی هستند و اطراف شمال زمین هستند روسها هستند ترکها یا تاتارها یا جو و ماجوج اینا همه از فرزندان یافس هستند یعنی هرچی در دنیا امروز انسان هست یا سامیه یا حامیه یا یافسیه لذا الله تعالیٰ می فرمایت و جعلنا هم الباقين اولاد نوح فقط اونها باقی ماندند بقیه نسلشون مونقرض و ترکنا عليه في الاخرين ما بر نوح نامی نیکی گذاشتیم در آخرین ببینید سیدنا نوح نامنی نیکی دارد در میان نسل‌های بعدی آخرین نسل‌های بعدی هرچی مشرکه مشرک مومن یهودی همین نوح را قبول دارند همه از نوح تعریف میکنن. سلام علی نوح فی العالمین در همه عالمیان بر نوح سلام بعد اینا کذالک این بیان سنت الله ما ما گونه پاداش نیک میدهیم نیکوکاران و مخلصین را اینهو من عبادنا المؤمنین همان نوح پیانبر از بندگان مؤمن ما بود سم ما الاخرین بعدن بغیر ما غرق کردیم اینا را گذاشتیم به همین خاطر آخرین فرموده بعضی میگند که تمام انسان ها اون زمان هلاك شدند طوفان نو سراسری بود عالمی بود جهانی بود الان بعضی اعتراض میکنن که خب نو علیه الصلا و السلام برای یک قوم مبعوث شده بود بقیه اقوام چه گناهی داشتند اون زمان جمعیت انسان ها تمام دنیا نبود مختصر بود لذا نو علیه الصلا و السلام برای اونها مبعوث شده بود نو با آدم زیاد فاصله نداره ثم اغرقنا الآخرين، و من شيعته لابراهیم از گروه النوح از نوح مثل النوح موحد یکتا فرست ارجاء ربه بقلب سلیم زمانی رب خدا همون قلبی را دوست داره که تو شرک نباشه آمیزش غیر الله نباشه قلب سلیم ای مخلص من الشرک تفسیر روح المعانی نوشته ای سالم من جمیل آفاق کفساد العقائد و نیات السیئة والصفات صفات عقیده فاسد توش نباشه نیت فاسد نباشه اخلاق زمیمه نباشه والحسد والغل وغير ذلك از همه اي آلائشها پاک باشه نوح بحجنان قلبی در محضر ابراهیم بحجنان قلبی آمد اذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون زمانه که ابراهیم به پدر و قومش گفت ماذا تعبدون چه اون که شما عبادت می کنید اعفکا آلیهتا آیا آلیه دروغین دون الله غیر از دون الله غیر از خدا فریدون شما می خواهید غیر خدا دیگه آلیه دروغین می خواهید فما ظنکم بی العالمین گمان شما نسبت به رب العالمین اون رب که تمام رب تمام جهانیان است نسبت به او چه گمانی داری برای او شریک چرا این کار را میکنید؟ کنید فنظر نظرتا فی النجوم بالاخره حضرت ابراهیم را دعوت دادند که بریم یه روزی جشنی داشتن مناسبت مذهبی داشتن ابراهیم بحانه کرد نرفت ابراهیم چی گفت نظر نظرتن فی النجوم تو ستاره نگاه کرد فقال این نسقیم گفت من مریضم چی گفت من مریضم این آیه داشته باشید که ابراهیم اینکه گفت من مریضم این توجیه داره مریضی دو نوع مریضی یکی مریضی جسمیه که انسان بدنش مشکل داشته باشه درد داشته باشه توانایی رفتن داشته نباشه یکی مریضی روحیه انسان اذیت میشه آزار میبیند از عملکرد بد قوم پس منظور ابراهیم علیه و السلام چی بود مریضی روحی بود من با شرک شما آزار می بینم چون مریضی هونه که شما هر وقتی که اون در بدن بیشه ببینی بدن شما آزار ببینید بدن تون عذیت بشه خب گاهی روحی انسان آزار می بینه این هم نوع مریضی هست پس این سخن ابراهیم خلاف نیست این دروغی نیست این را میگن توریه چی میگن توریه که ظاهرا یک کار میکنی اما پشت پرده چیزی دیگه هست به ظاهر تطبیق داره خلاف گفته نمیشه معلوم میشه از اینجا یک برداشتی که ما میکنیم گاهی انسان به خاطر مسئلحت دینی میتونه توریه بکنه یه چیزی بگه که ظاهرم معنیش کیه اما حقیقتن یه چیزی دیگه است بین دو نفر مثلا شما اصلاح می یا برای نجات خودتون نجات دین خودتون توریه می همونطور همون طور که برای ابراهیم جایزه، برای من و شما هم جایزه. اما اینکه در حدیث آمده که ابراہیم سلاس کذبات تا دروغ در حدیث کلمه کذبات آمده به این خاطر میگه من نمیتونم سفارش بکنم شفاعت بکنم در اون حدیث شفاعت اون حقیقتاً و دروغ نبوده اما چون مخاطبین چیز دیگه فهمیده از نظر اونها دروغ بودن حقیقتاً و در واقع و در نفس الام دروغ نبودن خب پس از این نرفتن ابراهیم دو تا نتیجه میگیریم یک توریه به خاطر مصلحت دینی جایزه دو عرض به خدمت شما که شرکت در مراسمات دینی غیر مسلمانان حرامه جایز نیست کسی مراسم اگر یه مراسم مراسم سیاسی باشه یه مراسم مراسم ملی باشه خب اشکال نداره ما شرکت بکنیم وقتی نسبت به یک کشوری خودمون را در هر کشوری از کشورها زندگی میکنیم مثلا اون کشور یک روزی داره یوم آزادی روز آزادی جشن میگیرند در اون روز سخنرانی میکنن در اون روز در باره کشور فکر میکنن ریزی میکنن مسلمانان برای شرکت کنند در روزهای ملی در روزهای که مربوط به وطن مربوط به سیاست اشکال نداره اما در مراسم مذهبی که از نظر مذهب ما اونها درست نیست شرکت کردم، هیچ صورت جایز نیست درست نیست که انسان بره در مراسمات مذهبی غیر مسلمانان شرکت بکنه مسلمان هندوستان مثلا میتونه در روز آزادی هند از استعمار انگلیس با هندوها یک جا شرکت داشته باشه اما نمیتونه در مراسم مذهبی هندو که مثلا در اون تعظیم گاو هست در اون شرک هست نمیتونه اونجا شرکت بکنه جایز نیست حرامه ابراهيم عليه الصلاه به همین دلیل شرکت نکرد پس این دو مسئله از اینجا اما سوال اینجاست که ابراهيم ستاره را نگاه کرد ستاره را نگاه کرد یا نیچه‌ای بعضی میگویند که ابراهيم عليه الصلاه والسلام چون قومش سترپرست بودند ابراهيم می‌خواست که قوم او را اصرار نکنه این نگاه به ستاره انداخت گویا من چیزهای تو ستاره می بینم دیگه قوم غانی میشه قوم اسرار نمی نگاهی کرد تا انها فکر بکنن که نیامدن ابراهیم از روی دلیل است اصرار نکنند اللہ ما تفصیل جابعیوں البیان نوشته کان قومه نجامین قوم ابراهیم چی بودند؟ نجومی و ستاره پرس بودند او همه هم استدلاله ارام مرضیهی به علم نجوم این توهم را در ایجاد کرد که من که نمیم چون چیزی تو ستاره میبینم تاکی اونا ویلکونش باشه اما بعضی گفتن نه نظر نظرتن فی النجوم یه اصطلاح عربی هست معنی تدبر معنی تفکر هر کسی فکر بکنه اینا نمیگه نظرا نظرا تا فی النجوم در زبان عربی یعنی فکر کرد با خودش قال الحسن لما كلفوه الخروج معهم وقت اورا مکلف کردن تو بیا با ما بیرون شهر تفکر فی ما يعمل يعمل فکر کرد نظره فی النجوم یعنی تدبره تفکر قال الخليل والمبرد يقال للرجل اذا فكر في الشيء يدبره نظر في النجوم ميجا نظر في النجوم بنا برين إن بايم مي معنى ميكورين فنظر نظره في النجوم يعني باخذ فكر فقال اني سقيم قلت من مريضم فتولوا عنه مدبرين فس انها فتولوا یعنی پشت دادم به او برگشتند از او مدبرین پشت دهنده فراغ الی الیتهم مخفیانه رفت به سوی خدایان اونها غذا بود اونجا حلوا بود گوشت بود انواع خوراکیا چون اونها در مراسم اعیادشون مراسم جشنها انواع غذاها درست میکردن جلوی خدایان میگذاشتن می رفتن کارشون رنجام میدادم دادن بر می گشتن معتقید دیگه خدایان برکات خودشون را تو غذاها گذاشتن بعد اون غذاها را می خوردن اعتقاد به برکت داشتن ابراهیم وقتی که رفت ابتدا فقال الات اکلون نوی تمسخور است چرا نمی میل مل نمی فرمایید مالکم لا تنتقون چرا با من صحبت نمی کنید فراغ, آل فراغ علیهم پس روی آورد بر آنان رفت به سوی آنان با ضربه قوی با ضربه محکم ضربم بالیمین یمین به من قوی قبلا گفتیم دست راست کنایه از قوت است با ضربه محکم زد همه را خورد کرد خودش رفت لابود کسی به قوم خبر داد شما اینجا هستید خدایا نابود شدند تکه تکه شدند فَاَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ آمدن بسوئی اون که فرار می کردن، می دویدن دو می آمدن. ابراهیم را گفتن تو این کار را کردی؟ ابراهیم از انها پرسید قال أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ آیا شما پرستش می کنید آن چیز را که خودتون می تراشید. در حالی که وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وما تعملون اللہ شما آفریده و همچنین تمام اعمال شماره الله آفریده اونا جوابی نداشتن تنگ آمد به جنگ آمد گفت ابراهیم را شکنجه بدید بسوزونید بی بعضی تفسیر ها گفتند که در دین اونها این بود که هر کسی از دین بدپرستی برگشت او را زنده زنده زند بسوزانند به همین خاطر قالوا ابنوا له بنيانا گفتم برای او یک بنای بزرگی درست کنید یک دیواری درست کنید که پر آتش بشه فالقوه في الجحيم بی انداز او را در جهنمی که در دنیا درست کرده بودند در آتش فارادو به کیدا نسبت به ابراهیم آنها اراده یک کید و تدبیر کردند یعنی مکر و توطئه فجعلناهم الاسفلین ما قرار دادیم اون را یعنی چه؟ یعنی ناکام نامراد به هدف نرسیدند. ابراهیم را دستور دادیم آتش را که نسوزاند ابراهیم سالم برگشت از آتش بیرون آمند اونا تمام تعجب کردن لذا بعد از اون گفته ابراهیم الان که نسوختی بیشتر جای اینجا نیست ابراهیم هم آماده هجرت شد وقال انی ذاهب الى ربی سیهدین گفت من میرم بسوی ربم اومر راه نمائی می کند رب حبلی من الصالحین الان ببین سختی ها را کشیده فرزند ندارد خداوند عزوجل زنی که داده بود حضرت ساره بود بعدا در همین مسیر که آمد به طرف شام حجرت کرد در مصر خدا تعالی از طریق پادشاهی بیشت هاجر را داد هاجر کنیزی بود ابراهیم علیه صلات و والسلام او را عقد کرد و او ازدواج کرد بعد از اینکه با او ازدواج کرد باز هم اولاد نداشت دعا کرد رب هب من الصالحین بار الها به من ببخش از صالحین یعنی فرزند صالح به من ببخش بی این دومین پیامبر این نیاز داره به فرزند خدا بهش اولاد نداده خدا داره نشان میده که پیغمبران محتاج من. پیغمبران خودشون نمیتونستن هر وقت حتی فرزندار بشن صاحب فرزند بشن مگه ما را رو میکردن همه خود بقیه انسان‌ها را خدا اولاد داده بعضی از پیغمبران را مثل ابراهیم و زکریا که از بهترین و مشهورترین پیغمبران بی اولاد گذاشته بعداً اولاد میده در پیری در واقع خدا نشون میده که حتی انبیا من برای اولین نیازهای زندگی که فرزندار بودن هست هم محتاجم تا من نخواهم نخواهند داشت انسان باید تو این مسائل خوب بفهم توحید را چرا انسان به سوی بندگان خاص خدا بره و ها حاجت بخواد الله می فرماید رب هب من الصالحین بار به بمن الصالحین ببخش الله می فرماید فبشرناه بغلام حلیم ما اورم مجددادیم دادیم به پسرکی به غلام بردبار صفاتش را خدا بیان کرد بردبار مشکلات را تحمل میکنه کنه بردواریش بالاست این فرزند وقتی که بزرگ شد فلام ما بلغ معاه سعی وقتی که رسید ب... همراه با ابراهیم به سعی و تلاش به کار کردن بعضی میگن سنش به هفت سال رسید هفت سال معمولا بچه میتونه یه چیزی به دست پدر بده کاری برای پدر انجام بده بعضی گفتن سیزده سال بالاخره به شد که با پدر میتونه کار بکنه قال یا ابنیه انی ارا فی منام گفت ای که من من در خواب دیدم انی اذبحک فانظر ماذا ترى اینکه من تو را ذبح میکنم تو ببین نظر تو چیه فانظر ماذا ترى پسر پسر ابراهیم بود نگفت بابا خوابه بیشتر از این فکر کن هر چیزا تو خواب می‌بینه دیگه لازم نیست ولی پدر همونطور که پدر تسلیم خدا از فرزند هم از پدر به ارز برده قال یا ابی تفعل ما ای پدر انجام بده آنچه که امر می‌شوی ستجیدنی ان شاء الله من الصابرین گرچه پسر کوچیکی هست ولی پسر نبی است این کلماتش را انسان بزرگی بزرگ سالی مثل من شما نمیتونه بگه میں گئی ستجدونی انقرید بینی اگر خدا بخواد به خودش اعتمادی نداره اگر خدا بخاد مرمی بینی اصابرین مرمی بینی بلاخر ایک پدر پروائی نیست فلمہ اسلمہ وقتی که حد و تسلیم شدن وطلہو للجبین خواباند او را به جبین خواباند جبین یعنی پیشانی جبین را به طرف زمین کرد یعنی چه در روایت های تفسیری هست الله اعلم و به حقیقت الحال میگن خود اسماعیل پیشناد داد که پدر اولاً بر چشمان من پارچه چیزی ببند که من نبینم یه وقت بی سبری نکنم و بعد جبینم را به سوی زمین بکن تا تو هم چهره من نبینی محبت پدری غالب نیاد حکم خدا را درنگ بکنی تاخیر بکنی لذا هم به جبین خواباند او را و هم چشمهای او را بست این تدبیر اسماعیلی بود تا پدر و پسر به نحو احسن حکم خدا را اجرا بکنن درنگی نباشد فلما اسلاما و تللهو لِالجَبِينِ ابراهيم کار خودش را کرد. گرفت چاغورا و بر گلوش میکشید تا اینکه فوراً جبرائيل ظاهر شد. و نادینا هو أيها ابراهيم ما ندا کردیم أي ابراهيم قد صدقت الرؤيا همانا در این رؤیا صادقه میی. إنك ذلك نزل محسینين ما این گونه پاداش نیک می دهیم مخلصین را ان ذا لهو البلاء المبين. همانا این امتحان آشکاری بود ما گفتیم بی عوض اسماعیل فدینا ہو عوض او را دادیم بی زبح نظیم زبح بزرگی یعنی حیوان بزرگی که زبح بشه قربانی بشه اسماعیل را دیگه نکش. قربانیت قبول شد بالاخره به جای اون کبش اون غوچ که خداوند فرشتاد اونه کشت ابراهیم علیه سلطورست حالا اینجای بحثی میخوام برای شما عرض بکنم تو تقصیرها شاید گاهی ببینید به این خاطر اون بحث ما اینه که زبیح که بود این بنی اسرائیل یک قوم حسودی هست اینها تو کتاب هایشون نوشتند حتی در تورات تورات را که دستکاری کردن تو انجیل هر دو بنی اسرائیلی هستند، تو هر دو نوشتن زبیح اسحاق بود ای که همون کینه پسرموی هست این چون بنی اسرائیل با عرب ها پسرمو بودن دیگه اینا ان فضیلت را برای اسماعیل قبول ندارند و تو کتاب تورات و انجیل تو کتابهایشون نوشتند که زبیح اسحاق بود لذا امروز هم یهود اسماعیل را به عنوان زبیح نمی اسحاق را می و چیزی که بیشتر درد, درد آور است و آزار دهنده است اینه که بعضی از علماء یهود که مسلمان شدند مثل کعب احبار کعب احبار در زمان صحابه مسلمان شد یک عالم بزرگ یهودی بود کعب احبار چون تورات دستکاری شده بود کعب از روی تورات روایت میکنه کعب هم چندین روایت ذکر کرده برای صحابه نقل کرده صحابه هم اون ها رو بعضی نقل میکنن بعضی از تابین هم نقل میکنن صحابه تو این روایت ها الان تو کتاب های ها هم از بعضی از علما متأصلم شدن از این روایت ها که ذبیح اسحاق است لذا خیلی از مسلمانان هم هستند که می زبیه هست الان میگن ذبیح اسحاق است الان کمتر در گذشته تو کتابا شما می بینید که اسحاق ذبیح است در این رابطه متقدمین ما و علمای محققین ما رسما کتاب نوشتند که من هو الزبیح زبیح کیه؟ اسمایل یا اسحاق دلائل زیادی نمیشن الان من خدمت شما این دلائل را عرض می کنم اولا ببینید اولین با یهود کار نداریم یهود قرآن را قبول نداره من روی سخنم با همین مسلمانانی هست که متاثر هستن اونا میگن که خب خدا تعالی اسحاق را به ابراهیم داد اسحاق را ذم کرد چون با مادر اسحاق از عراق حجرت کرد ولی خب در وسط خدا حجر را بش داد. اولا ببینیم اگر کسی قرآن را خوب مطالعه بکند از همین قرآن می فهمد که اول ابراهیم دعا میکنه خدا میگه ما فرزند حلیم بهش دادیم بعدان جریان چی میاد جریان ذبح میاد بعد از اینکه جریان ذبح تمام میشه اینجا خدا میفرمه وبشرناه به اسحاق نبیا من الصالحین بعد از جریان ذبح خداوند مجد پیدایش اسحاق را مطرح میکنه لذا اون زمانی که اسماعیل ذبح شد اصلا اسحاق متولد نشده بود از روی همین آیات نگاه بکنید. از روی همین آیات مشخص میشه که از کنم زبیه اسحاق نیست اسمایله. چون بعد از اسحاق، بعد از زبج جریان زب میفرمای وبشر ناهو به اسحاق نبی من الصالین شما در آیات بعدی میخوانید. این یک دلیل. دلیل, دلیل دوم در همون روایت های خود ما بنی اسرائیل از اونجا علمای ما برداشت کردن تو همون تورات هست ابراهیم تنها فرزندش را تک فرزندش را خب در زمان اسحاق مگه اسحاق تک فرزند بود؟ همه مسلمانان و غیر مسلمانان یهودی همه قبول دارن که اول اسمایل متولد شد بس اسحاق تک فرزند نبود؟ تک زن کیه؟ اسمایل است. اون زمانی که اسمایل متولد شد، اصلا اسحاق نبود. اسمایل را بعضی گفتند که هشت سال از اسحاق بزرگتره. چون این زمانی که باس علی زبع پیش آمد، هفت ساله بود. یک سال بعد خدا اسحاق را داد. بعضی گفتند چهارده سال بزرگتره. این زمانی که ذبح پیش آمد 13 ساله بود یک سال بعد خدا اسحاق را داد 14 ساله بود لذا تک فرزند اسماعیل نه اسحاق این دلیل دوم یعنی بر اساس نظرات تورات هم اسماعیل ای. چون تو هم تورات کلمه تک فرزند است خدا به ابراهیم دستور داد تک فرزند خودت را برای ما قربان کن این دو دلیل دلیل سفوم ابراهیم علیه الصلاه و السلام وقتی که برد فرزند خودش را تا ذبحش بکند هر جا شیطان مزاحمت می‌کرد با سنگ میزد. امروزه حاجی‌ها همونجا جمرات را می‌زنند یا نمی‌زنند رمی جمر عیناً در همون جاها هست اینم دلیل اصلا تو تاریخ نیست نه تاریخ مسلمانان نه تاریخ یهودیا که اسحاق به مکه آمده باشد هیچ جایی نیست که اسحاق پایش را در مکه گذاشته باشد اینجا محل کی بود اسماعیل بود پس این رمی جمار دلیل سوم و دلیل دیگری هست که زبیه اسحاق نیست زبیه چیه اسماعیل است و آخرین دلیل در کتاب هم میاد که این کبشی و این گسفن را که خدا تعالی غوچی را که برای ابراہیم علیہ السلام فرستاد ابراهیم اون را قربانی کرد دوتا شاخ بزرگ داشت شاخایش را برخانه کعب آویزان کردند و سالهای متمادی شاخش اونجا بود تا زمان عبداللہ ابن زبیر تا زمان عبداللہ ابن زبیر اون شاخ ها بعدا تو همین جنگ هایی که بین حجاج بن یوسف عبدالله بن زبیر رخ داد و قبلا ما خاندین برخی از خانه کعبه تخریب شد اونجا اون, اون شاخ از بین رفتند لذا شاخهای اون غوچ تا این زمان بودند بس کجا این جریان در شام اتفاق افتاده چون بعضی از یهود میگن نه این جریان تو شام ای این جمع امروز مسلمانان درست کردن بس اون شاخ چیه؟ لذا این دلائل متعددی هست مبنی بر این که زبیح حضرت اسماعیل بود نه اسحاق اسحاق بعد از جریان زبح اینجا قرآن میگه بعد از جریان زبح اصلا بشارتش آمد و متولد شد لذا اللهمی فرماید وفدیناه بذبح عظیم ما فدیه اسماعیل دادیم زبح بسیار بزرگ و ترکنا علیه فی آخرین بر ابراهیم نامی نیک گزاشتیم در آخرین در نسخای بعدی همه گروه ابراهیم ابراهیم بنی کی یاد می کنند سلام علی ابراهیم سلام بر ابراهیم کذالک نزل المحسنین انگون ما پاداش نیک می به مخلصین انهو من عبادن المؤمنین همانا ابراهیم از بندگان مؤمن مابود و بشرناه بی اسحاق نبی من الصالحين بعد از اون ما بشارت دادیم او را اسحاق که اسحاق نبی هست از صالحین یک دلیلی که فراموش کردم ذکر بکنم هم در تورات است هم در قرآن که فرشتگان آمدند ابراهیم را خوشخبری دادم به اسحاق و گفتم و من وراء اسحاق یاقوب پشت سر اسحاق کیه؟ یعقوبه خب پشت سر اسحاق یعقوبه اگر بناست زبیه بشه پس چطور پشت سرش یعقوب متولد میشه؟ متوجه شدید؟ فهم حمل مسئله نه؟ یعنی اسحاق میماند، بزرگ میشه، زن و بچه خواهد داشت، یعقوبی درست میشه، یعقوب پیانبر میشه و نسل دامی میابد پس از همون روزی که هنوز اسحاق پیدا نشده بود، خدا مجد داد که اصحاقی بهت میدم بعد از نسل اسحاق یعقوب هم بهت میدم بنابراین این هم در قرآن هستم در تورات هست پس چطور اسحاق میتونه زبیه بشه زبیه بودن با این بشارت در تعارض تضاد هست یا نیست در تضاده دیگه چطوره از یک طرف خدا میگه باید این فرزندش یعقوب پیغمبر بشه فرزند یعقوب یوسف پیغمبر بشه از یک طرف باید این کشته بشه ذبح بشه معلوم میشه زبی از همون ابتدا اسحاق نبوده زیرا الله می فرماید و بارکنا علیه و علی اسحاق ما برکت دادیم بر ابراهیم و بر اسحاق و من ذریعتهما اما از نسل اولادشان دنو داریم محسن هم مخلص داریم و ظالمن هم ظالم داریم هم نیکوکار و هم ظالم اونی که ظالم هست لنفسی برای خودش ظلمی کنه نبی کسی دیگه مبین که ظلمش آشکاره روشن هست و لقد منننا موسا و هارون ببین؟ از کردم ذکر هفت تا پیغمبر میاد این پیغمبران یکی کمک میخاد که دشمنانش نابود بشه یکی فرزند نداره کمک میخواد یکی دیگه مریض میشه کمک میخواد هر یکی یک مشکلی داره پس ستور اینا این پیغمبران میتونن که خدا قرار بگیرن معبود قرار بگیرند. لذا الله می ولقد مننا على موسی وهارون ما منت گواشتیں ما احسان کردیم بر موسی و هارون و نجیناهما بیبی موسی و دارن شو محتاجن و نجیناهما ما انترا نجات دادیم وقومهما قومشان را من الكرب العظیم از مصیبت بزرگ مصیبت بزرگ و نصرناهم ما انها را یاری کردیم فکانوهم الغالبین آنها غالب شدن بر دشمن بر فرعون و الكتاب المستبين بعد از غرق فرعون ما بانها دادیم کتاب روشن المستبین یعنی چه؟ واضح روشن وَهَدَيْنَاهُمَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ مَا أُنْهَارَ الرَّهْنِمَائِي كَادٍ بِسِّرَاطِ مُسْتَقِيمِ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ مَا بَرْ أُنْهَا قُزَاشْتِمْ نَوْمِنِي من كَدَرْ بَعْدِيهَا هم هم مسیحی، هم مسلمان، همه موسیٰ و هارون را قبول دارند. سلام علی موسا و هارون، سلام بر موسیٰ و هارون، از سوی پروردگار، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ ما مخلصین را اینگونه پاداش نیک میدیم. بیان سنت هر کسی برای دین خدا تلاش بکنه، با اخلاص پاداش پروردگار سلام و صنع است، انهما من عبادنا المؤمنين همانا اندو از بندگان مؤمن معبودند خب تا اینجا ذکر چار پیامبر آمد پیامبر پنجم و از طرف قصه چارم چون داستان و قصه موسی و هارون یکی هست و ان الیاس من المرسلین یکی دیگر از پیامبران الیاس است الیاس هم از فرستاده شدهگان است الیاس تو تورات اسمش آمده الیاح آخرش ها هست اما در عربی الیاس الیاح یا الیاس در دو جای قرآن ذکر آمده تفصیل زیادی نیست فقط اینجا یک مقدار بیشتر که معلوم میشه در اون زمان بطی بنام بعل پرستش میشد اما الیاس را اونطوری که مورخین گفتند بسیار گفتند الیاس هم از پیامبران بنی اسرائیل است از نسل و از نوادگان حضرت هارون است از فرزندان هارون است در سال 853 قبل از میلاد قبل از میلاد عیسی علیه الصلاۃ والسلام این یه پادشاه یهودی بود به نام احاب این پادشاه یهودی با زنی ازدواج کرد که زنش پرست بود مشرک بود و این زنش از اشراف بود وقتی خانه پادشاه آمد با خودش یه بطی داشت که جزی همون رسومش بود اون بط اسمش بعل بود این که تو کاخ پادشاه بود هر روز بطش را می آورد اونجا در کاخ قرار میداد او را سجده میکرد عبادت میکرد یهودی ها که میدیدند الناس علی دین ملوک هم مردم بر دین پادشاهشون هرچی به پادشاه هر چی ببینند تقلید میکنند یهود هم کم کم بعلپرست شدند کم کم از طریق این زن بود پرستی و بعلپرستی رواج یافت چنان رواج یافت که این زمانی که الیاس علیه سلاته و سلام مبعوث شد در فلسطین در سامرا بطپرستی و بعلپرستی رواج داشت و بط بسیار بزرگی درست کرده بودن از بعل میگویند که این بعل را که درست کردند تمام این را از طلا درست کرده بودند جنسش از طلا بود و این بزرگ بود تمام مجاورانی که اینجا بودن اطرافش و از مردم می و می خوردند حدوداً چار تا مجاور داشت بطبل چار ست تا مجاور داشت و یک چیزی که باعث گمراهی انها شده بود قبلاً این بحث را کردم که شیاطین جنی چطور انسانها را گمراه می کنند این شیاطین حلول کرده بودند نفوذ کرده بودند داخل این بوت و با مردم سخن می گفتند با مجاوران چنانچه قرطبی نوشته کان الشیطان و يدخل في جوف بعل شیطان در شکم بعل داخل شده بود يتكلم بشريعه الزلالات مردم را به گمراهی و راه گمراهی راهنمایی کرد و یحفظونها و یعلمونها الناس خدمه و مجاورن هرچی که اون شیاطین میگفتند، حفظ میکردن به مردم یا نشان میداده، این کار بکنید، اون کار بکنید. یک شریعتی، یک روش زندگیی شیطانی برایشون. لذا ایلیاس برای انها مبعوث شد. الله و وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ همانا ایلیاس از فرستاده شدگان هست برای بني اسرائيل. اذ قال لِقَوْمِهِ أَلَا تَتْقُون زمانی که بقوم لیش گفت آیا شما از خدا نمی ترسید؟ اتدعون بالا آیا شما بل را فریاد میزنید و تذرون احسن الخالقین بهترین خالق را بہترین خالق را می گزارید اون بہترین خالق کیه اللہ یعنی اللہ راک ربکم و رب آبائکم الاولین، رب شماس و رب پدران اولین شماس فکذبوه اما اورا تکذیب کردند فانهم لمحذرون لمحضرون اللہ می فرماید اینا تکذیب کردند حاضر می بر لبی جہنم لمحذرون حول جہنم الا عباد الله المخلصین مگر بندگان خدا اون بندگان برگزیده خدا و ترکنا علیه فی ما بر او نام نیکی گذاشتیم در آخرین سلام علی الیاسین سلام بر الیاس سلام بر الیاس ببینید الیاس است ولی خب بخاطر وزن آیه با بقیه آیات همیش آخرش و و نون و یا نون است الیاس را گفتن چی؟ الیاسین برای ضرورت وزن و قافیه اما بعضی دیگه گفتن نه اسم پدر الیاس یاسین بود البته این قول ضعیف لذا سلامون على الیاسین یعنی على آل یاسین بی این است. سلام علیه ایلیاسین سلام بر ایلیاس بعد اینا کذالک نزل محسینین ما انجون پاداش نیک میذ مخلصین را اینه او من عبادن المؤمنین همان او از بندگان مؤمن معبود و این لوط اللهم انالمرسلین داستان پنجم داستان لوط است این داستان لوط را و داستان یونس بعد از این شما خاندید هم در سوره یونس هم در سوره هود وَإنَّ لُوتَ لَّمِنَ الْمُرسَلِينَ و این نلُوت من المرسلین اذن جئنا هو اهل و وقتی او وقتی ک اورا نجات دادیم و اهل اورا همگیران نجات دادیم، إلا عجوزن في القابرين مگر پیرزنی که زنی لوت بود در میان ماندگاران دگران، ثم دمرنا الآخرين کردیم آخرین را بغیر حلاک کردیم. و انكم لتمرون عليهم مصبحين شما مرور میکنید شما اهل مکه هر صبح از اونجا میرید و باللیل هر شب از اونجا رد میشید کاروانها وقتی که به شام میرکتن سر صبح زود حرکت میکردند از کنار لوت میگذاشتن قوم لوت شب وقتی برمیگشتن از اونجا برمیگشتن افلا تعقلون ای خرد ندارید این آثار را ببینید اون سنگ های که اونجا افتاده اون دریاچه میت و سیاه متعفن کنجاز این ها آثار عذابه چرا به عذاب فکر نمی کنید و عذاب خدا را متوجه نمی شبید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و این یونس لمن المرسلین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 الذي في بطنه الى يوم يبعثون سوره مباركه الصافات ذکر کسانی بود که مردم انهارا بعنوان معبود و بعنوان خدا و مشکل کشای خودشون انتخاب کرده بودند یا فرشتگان یا جنات و یا انسان‌های بزرگ و انسان‌های مقدس مثل انبیاء که ما از ابتدای سوره تا اینجا خواندیم خداوند تعالی در همه این آیات ذکر فرمود از احوال اینها از احوال هم فرشتگان هم جنات و هم انبیا که خلاصه این احوال این بود که همه اینها عاجز همه اینها در دربار خدا تعالی محتاجند برای خودشون مشکلات پیش می خودشون گرفتار می و هر وقتی که گرفتار می به خداوند رجوع میکردند تا اینجا ذکر شش تا از پیامبران خاندیم و این هفتمینش هست حضرت یونس علیه السلام که وقتی که در شکم ماهی گرفتار شد تصمیح و پاکی خدا و ضعف و عجز و کوتاهی خودش را اقرار می کرد سبحانك اني كنت من الظالمين که معنیش اینه پروردگارا ای رب من تو پاکی از هر عیب و هر ایراد تو پاکی و من ظلم کردم بر خودم ستم کردم تا خدا نجاتش داد کی نجاتش داد خدا نجاتش داد لذا این جایگاه انبیاست انبیا بندگان مقرب خدا هستند اما در مقابل الله آجزند مشکلاتشون را همیشه با خداوند مطرح میکنند و از خداوند حل مشکل طلبند وقتی که مشکل خودشون را خدا حل میکنه اون انبیاء چطور میتونه مشکل شما را حل کنه در باره داستان حضرت یونس علیه الصلاۃ شاید نیازی به نباشد ما در سوره مبارکی یونس خواندیم که یونس در شهر نینوا عراق که موسیل هست اونجا به عنوان پیامبر مبعوث شد یونس ابن متتا و خدای تعالی برای اون قوم یونس را فرستاد تفصیل زیادی تو قرآن نیست همینه که یونس علیه السلام اجتهاد کرد و در این اجتهاد اشتباه کرد قبل از اینکه دستور برسه قبل از اینکه خداوند بفرماید یونس منطقه را ترک کرد چون یونس گفت که خدا وقتی گفته عذاب میدم نباید پیامبر در زمان عذاب حضور داشته باشه بنابراین یونس منطقه را ترک کرد و رفت تا اینکه خدا تعالی عذاب نداد نه اینکه به خاطر رفتن یونس عذاب نداد قوم ایمان شد قوم توبه کرد داد و فریاد کرد و خداوند عذاب را منتفی کرد اینجا چون یونس بدون همهانگی رفته بود بدون اذن پروردگار رفته بود در کشتی گرفتار مشکل و گرفتار گرداب افتادن موج آمد هیچ طوفانی نبود هیچ دلیلی هم نبود که موج بیاد ناخدا گفت که پس یکی بدون آغایش بدون اجازه رفته همیشه وقتی کسی بدون ارباب و بدون آغا بدون اجازه بره این مشکل پیش میاد یونس علیہ السلام متوجه شد که من بدون اجازه آمدم گفت منم اونا باور نکردن شما انسان شریفی هستید خلاص قرکشی کردن قرآن میگه تو روایت های تفسیری سه بار قرکشی کردن هر سه بار اسم یونس در آمد. این یونس صلی اللہ علیہ خودش را انداخت خداون ماهی را آماده باش گذاشته بود که یونس را در شکم خودش آم امانت داشته باشد نه اینکه یونس را ببلعد یونس را از به خدمت شما حزم کند بلکه امانت تا اینکه اون روزی که مقدر بود خدا دستور داد به ماهی که بیرون می اندازد مفصری میگن که بدن یونس چی شده بود مثل یک ای که پرنده تازه از اون میاد بیرون چطور نرم هست و خالصتا یک گوشتی هست بدن یونس چنان شده بود و نیاز داشت به درمان نیاز داشت به علاج تا اینکه خداوند برای او برنامریزی فرمود لذا ترجمه آیات. و این نیو من المرسلین. همان از فرستاده شدگان هست. اذ ابقا إلى الفلك المشحون. وقتی که جویخ به که اون که پر از آدم بود. فساعه همه یعنی نقره اندازی کرد، قره کشیک کرد. فکان من المدحظين پس یونس. از مدحضین مدحضین کسی که نامش در بیاد از اونایی که نامشون در بیاد فلتق مه الحوت او را لقم کرد ماهی او را لقم کرد یعنی ماهی او را بلعید و هوا در حالی که اون خودش را ملامت میکرد این توبه قلبی هست توبه قلبی اینه که منو شما اگر اشتباهی کردیم تو دلمون خودمون را ملامت کنیم. تو دل پشیمان بشیم پس یونس تو دلش پشیمان بود و خودش را ملامت کرد تنها ما اگر تو دل پشیمان بشیم کافی نیست باید به زبان هم اقرار کنیم لذا بعد از اینکه در دل خودش را ملامت کرد با زبان هم خودش را ملامت کرد چی گفت فلاوله انه کان من المصبیحین اگر او نبود از تسبیغویان از گو گویندگان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اگر از این گویندگان نبود للبث في بطنه الى يوم بعثون میمان در شکم ما تا روزی که همه از قبر بلند میشن سبحان الله الله تعالی چقدر بی‌پرواست این پیامبر خدا است خدا می اگر اینا نمی گفت روز قیامت تو شکم ماهی باید می ماند فنبذناهو ما اورا انداختیم یعنی دستور دادیم به ماهی که بی اندازد بالعراء ای عرا می گویند یه جایی بی آب و علف را یه او را که بی آبان بود کناره دریا بود اینجا هیچ چینه نبود و هو سقیم در حالی که اون مریض بود کسی که بماند توشکم ماهی چند روز اکسیژن به بدنش نرسه چه حالتی در یک گوشتی بود گوشت نرمی و گوشتی که هر نوع آسیب را میپذیرفت تازه تازه بود چقدر توشکم ماهی مانده بود اللہ اعلم قرآن نگفته بعضی از مفسرین میگه هفت روز بود بازی میگذ 40 روز بود بالاخره این مدت تو شکم بود شکم ماهی بود الان اون را انداخت و مریض شده بود اما بعد ازین الله تعالی خودش برای یونس علیه السلام ریزه کردن الله میفرما و انبتنا علیه شجره میاقین ما بر او دیم درختی از یقطین درخت یقتین چه درختی هست؟ گفتند که هر درختی که تنه داشته باشد اون یقتین نیست هر یکی تنه ندارد یقتینه ببینی این درخت که ما می‌بینیم، تنه دارند مثل درخت اناره، درخت توت، درخت انجیره اون روی اون تنهش، تنهش یک, یک متره، دو متر، سه متر، بعدن شاخ و برگ روی تنه این یقتین نیست یقتین تین که از همون ابتدا برگ داره روی زمین برگ های بزرگی داره مثل کدو مثل از کنم بوته های خربوزه می میبینید که اینا برگشون از بقیه برگ های درختان کوچکتر نیست چه بسا بزرگترم است اما تنه ندارن تین اینها رو میگند و بعضی گفتن که تین اصلا اسم کدو هست خداوند از زوجل كدورا أunjاب را يشروياند، تا كل شجرة لا تقوم على ساق. هذا درختك الساق ندارت، اثنين ندارت. كالبيت... كالدبا والبطيخ، مثل كدوة هندوانه. والحنزل هننزل ذلك فهي عند العرب يقتين، إنها من يقتيند. و بعضی گفتن تفسیر مدارک والجمهور علی انه القرع جمهور بر این عقیده است که این کدو بود این درخت درخت چی بود کدو بود کدو را الله تعالی خصوصیات معلوم میش گذاشته در کدو در درخت کدو در خود کدو غذای کدو کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یحب الدباء رسول اللہ هم کدو دوس داشت غزائی تو کدو بود دوس داشت معلوم میشه تو کدو یک سری خصوصیاتی هست اما تفسیر مدارک انجا نوشته و اللہ علم و فائدته ان الزباب لا یجتمع عنده فائده کدو این هست که مگست جم نمیشه ان الزباب لا یجتمع عنده اون وقتی که بر بدن باشه بدن را بپوشاند چون که یونس علیه یه وضعیتی داشت که بدنش تمام از کنم افونته تمام تره تکه گوشتیه لذا نیاز به چیزی داشت که حشرات را اونجا دک کنه به این خاطر گفتن یقتین و کدو چیزی هست که مگس را نمیذاره مگس جمع نمیشه علا ای حال حکمتش را الله بهتر میدانه بعد از مدت یونس اونجا ماند خدا تعالی برایش برنامه ریزی کرد خوراک و آب و هر چیز خوب شد بعد از اینکه خوب شد خداوند فرمون الان برگرد به شهریت برگرد به نینوا مردم را تبلیغ کن مردم ایمان آوردن دیگه با مردم همراهی بکن یونس علیہ السلام برگشت خداوند اینجا جمعیت اون شهر را در اون زمان فرموده که یک هزار نفر بودن یا بیشتر از یک هزار نفر الله می فرماید و ارسلناه الی مئت الف او را فرستادم بسوئی یک هزار نفر او یزیدون او جب من بل حس بل یزیدون بلکه صد هزار تا بیشتر فاامانو اهل اون نی ایمان آوردند فمتعناهم ایلاحین ما اونها را و زندگی دادیم تا مدتی لذا این داستان یونس ببین تا اینجا ما خاندیم از داستان یونس هم, هم همین نتیجه گرفتیم از داستان ابراهیم نو موسا و هارون که همه انبیا خدا را صدا زدند قبل از اینا خواندیم همه فرشتگان صف بسته گوش به فرمان خدا جنات هم تا خبر میگیری میکنن شهاب می‌زنن اونها همه اینا عاجزند بس چرا این مخلوق خدا رو با خدا شریک میگیرند حالا خدا تعالی میفرما شما از این مشرکین بپرس ای محمد صلی الله علیه و که بعض هم برای خدا دختر چون فرشتگان را میگفتم دختر خدا و باست خودشون میگن ما پسر داشته باشیم فستفتهم سوال کن از انها اَلِي رَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ آیا برای دختران برای آنان پسران ام خلقنا الملائکة اِناثا آیا ما آفریدی ملائکر موانس موانس زن آفریدی و هم شاهد این هم شاهدند. انجام بودن که ما اونها رو به عنوان زنآفریدیم و چقدر دروغ میگه الله تعالی میفرماید الله إنهم من إفکهم لا ولد الله خبردار اینها از دروغی که میجویند میجوین ولد الله الله فرزند بدون بدنیا آورده و انهم لکاذبون كذبون اینها در این ادیاها خودشون دروغ میجویند استفال بنات علی البنین اللہ می فرماید آیا انتخاب کرده دختران را برپسران مالکم چی شده شما را ای مشرکان کئی فتح کمون شما چگونه بد داوری میکنید چگونه شما قضاوت میکنید افلا تذکرون آیا شما پند نمیگیرید گیرید پند نمی گیرید؟ این همه آیات الهی این همه دلائلی که بر اثبات توحید است که همه اینها ثابت میکنه خدا محتاج نیست خدا یگانه هست خدا وحده لا شریک هست بعض هم پند نمیگیرید. گیرید ام لکم سلطان و مبین یا اینکه برای شما مدرک آشکاری هست یعنی شاید دلیل نقلی دارید اگر دارید بیارید اگر دلیلی که تو اون دلیل میخوای ثابت کنی خدا پسر داره یا خدا دختر داره بیارید فا تو به کتابی که اون کتاب خودتون را دلیل خودتون را بیارید این کنتم صادقین اگر شما راست میگوید حال الله تعالی میفرماید این اینها چقدر ظالمند چقدر انصافند که بین خدا و بین مخلوقش که جنات باشند جنات مخلوق خدا هستند بین خدا و جنات اینها نسب ایجاد کردند نسب خیش آوندی الاعاذ بالله میگویند الا ثم الاعاذ بالله میگن خداوند داماد جنات هست سرداران جنات و دختران خودشون را به عقد خداوند در آوردند و از این ازدواج فرشته پیدا شده انسان که جاهل باشه هر چیزی خودش می بافت درست میکنه الله تعالی اینجا این مطلب را بیان می فرماید وجعلوا بينه وبين الجنه نسب قرار دادم بين الله وبين الجن نسب قرار دادن در حالي که الجن ميدانند ولقد علمت الجننت انهم لمحذرون جنات ميدانم بدليل كفرشان بدليل السركششان انهم لمحذرون هم انا انها حاضر كرد ميشوان بر لبه جهنم جن چن نسبت با خدا داره؟ جن بخاطر سرکشیش بر کناره جهنم حاضر میشه او با خدا نسبت داره؟ سبحان اللہ اللہ پاکست از این عیبی کی بیان می کنند پاک پاکست از این نسبت و خیشاوندی کی بیان می سبحان الله، عم ما یصفون پاکست اللہ از آنچه کے بیان می الا عباد الله المخلصین این استثناء از چی از لمحضرون است مگر بندگان برگزیده خدا اینها بر لبه جهنم حاضر نمی شوند الا عباد الله المخلصین بندگان خالص خدا انها حاضر نمی شوند خدا رب باقی خدا رب بیان می کنند فَإِنَّهُمْ يُنَزِّهُونَ اللَّهَ تعالى اما یسفون هاولا از اون چیزی که این ها برای خدا وصف میکنند بندگان مخلص خدا واقعی خدا را بیان میکنند فانکم و ما تعبدون ما انتم علیه خداوند مشرکین را خطاب میکند که ای مشرکین شما که برای خدا دختر و پسر و همسر و از این چیزها ادعا می کنید شما و تمام معبودان شما معبودان یعنی شیاطین شما شیاطین جن و انس فانکم و ما تعبدون ما انتم علیه بفاتنین نمی توانید بر علیه خداوند مردم را چکار کنید بفاتنین یعنی بر علیه خداوند بر زد خداوند مردم را گمره کنی فاتن از فتنه از فتنه بین گمراه نمی تونی مردم را بر ضد خداوند گمراه کنید الا من هو صال الجهیم مگر کسی که خودش وارد جهنم بشه گمراهی در مقدر او باشه او خودش گمراهی بخواد چرا اما کار شما نیست شما قدرتی ندارید شیطان گاهی خیلی تلاش میکنی ایک انسانی را فریب بده نمی تونی. وما منا الا له مقام و معلوم ببین تا اینجا بحث جنات بود عرض کردم این سه را خدای تالا بار بار تو این سوره ذکر میکنه قبل انبیا قبلا فرشتگان بود بعد از فرشتگان جنات دوباره انبیا حال دوباره جنات دوباره فرشتگان وما منا الا له مقام و معلوم این مقوله مقوله فرشتگان است فرشتگان میگویند که ما قدرت خدایی نداریم ما خادمیم ما صف بسته گوش بفرمان خداییم و ما من نیستند از ما الا له مقام معلوم مگر برای او درجه مشخصی و جایگاه مشخصی و اینا لنحن صافون همانا ما صف بسته هستیم و اینا لنحن المسبحون همانا ما شب پاکی خدا بیان می کنیم تسبیح خدا بیان می کنیم و این کانو لیا قولون همانا انها می گویند لو ان نعندنا می گفتند ببین انجاز زاج برای کفاره. خب پس ما خاندیم جایگاه فرشتگان اینه فرشتگان خودشون می گویند می گویند انسانها ما شب و روز تسبیح و پاکی خدا بیان می کنیم، عبادت خدا می کنیم، یعنی خود ما عبید خدا هستیم، و شبر و صف بسته گوش به فرمان خدا هستیم، پس اینها وقتی که اینطور خادم باشند، چطور میتونه مشکل بشا باشند؟ و حال الله تعالی شکوه و گلایه می فرماید، از مشرکین که این مشرکین الان اینطور کلمات شرکی و کفری می گویند. توحید خدا را قبول نمی کنند اینها تا دیروز میگفتند که اگر کتابی بر ما نازل بشه همون طور که بر یهود و بر مسیحیان نازل شده لکن نه اهدام ما بیشتر بر هدایت بودیم لکن ما من الاولی ما جز اولین کسانی بودیم که ایمان می آوردیم خب ای مشرکین شما تاریخ روز این گفتی الان این کتاب نازل شد این پیامبر فرستاده شد الان چی شده کفر می کنید اغلب میرید الله می فرمد و این کانو این این مخفف من المساکلاس همانا و این کانو لیاققول همانا اینها بودن می گفتند لو آن عندنا ذکرن اگر باشد برای ما هم پندی ذکر برنامه پند و کتابی که پند آموز باشه من جنس ذکر الاولین مثل هم ذکر گذشتهگان باشه پند گذشتهگان می گفتن لو ان عندنا ذکر من الاولین اگر برای ما پندی باشد از اون پندهای پیشین مثل یهود مثل نصارا کتابی مثل کتاب اونها لکننا عباد الله المخلصین حتمن حتمن ما میشیم بندگان برگوزیده خدا میشیم اما الان که کتاب آمد فکفرو بهی این کفر کردن فسوفی علمون ان قریب نتیجه کفرشان را میدان اند میدان که کفر کردن به کتاب خدا چه عذابی و چه کفری دارد و در پایان الله تعالی بشارت بیان می برای بندگانش بندگانی که فرستاده می شوند به عنوان پیامبر به عنوان حامل کتاب به عنوان حامل پیام رب العالمین اونا را خدای تعالی نصرت می کند و لقد سبقت کلمتنا همانا کلمه ما پیشی گرفته کلمه یعنی فیسله یعنی وعده قبلا خدا وعده کرد؟ ما وعده کردیم و ما این قول را کردیم این جمله را گفتیم لعبادن المرسلین بی گفتیم بکی وعده کردیم بندگانمون اون بندگان فرستاد شده اون بندگانی که فرستاده شدن برای پیام ما ما قول کردیم این هم لهم المنصورون همانا آنها فقط آنها یاری می شوند دشمنانشون را خدا یاری نمی کنه، خود مرسلین را خدا یاری می کنی و این جندنا لهم الغالبون همانا لشکر ما با اعتبار انجام با اعتبار نتیجه آنها غالب خواهند بود لذا ای تو نارهت نباش فتولعنهم عنهم حین از انها روی بگردان از انها روی گردانی کن تا یک مدتی و ابصرهم ابصرهم یعنی انها را خوب نگاه کن زیر نظر بگیر یعنی انتظار باش برای من هم منتظرشون باش فصوفا یبصرون ان قریب انها می بینن افا بی عذابنا یستاجلون آیا نسبت بی عذاب ما انها اجل می کنن می گفتن زدتر عذاب بیان چون باورش نا رب العالمی می فرمایت فا اذا نزل بساحتهم هرگا عذاب نازل بشه در میدان اونها، ساحا سالون رمیگن میدان رمیگن انجای کنها هستن وقتی که نازل بشه فساء صباح المنذرین بسیار بد و زشت خواهد بود صبح تسانند شدگان یعنی اون صبح که عذاب بیاد اون صبح صبح خوبی برایشون نیست اون صبح صبح بدی هست اون روز روز سیاهی هست صبح سیاهی هست و تول عنهم حتی الله اللہ از اینها روی گردانی کن یعنی ای پیامبر صبر کن و روی گردانی کن تا مدتی و ابصر منتظر باش فصوف یبصرون اونها ان قریب میبینند و در پایان خلا خلاصه سوره را اللہ ذکر میفرماید خلاصه زوره در این سوره چی خاندیم؟ کسانی که شما شریک خدا قرار میدی شریک نیستند اینا خودشون آجزند فرشت آجزه وصافات سفن صف سف بسته گوش بفرمان جن آجزه جن تامیر خبر کشی بکنه شلی کی بسوی او از شهاب ساقب کے دیوانش میکنه یا پودرش میکنه، پیامبر آجزه پیامبر خودش در حاجات خدا رمی خاند پس همه آجزند خدا پاک از شریک خدا پاک از نائب خدا پاک از فرزند و اولاد سبحان ربک این خلاصه سبحان ربکا پاک از ربتو آن ربکی رب العزت رب عزت است عزت دو معنی قبلا گفتیم یکی اینکی غلبه غلبه او برتری مال او هست یکی اینکی عزت او میده عزت دهنده هست پاکس ان رب العزت اما یصفون از آنچه که توصیف میکنن برایش از آنچه که بیان میکنم برای خدا, خدا خدا از اون پاک است و سلام علی المرسلین و سلام بعد الزوی پروردگار برف رسدندگان یعنی اون پیامبرانی که توحید خدا را بیان میکنن ای المبلغین عن الله التوحید والشراعی سلام بر آنها والحمد لله رب العالمين تعریف برای الله مدح السلام ثنا برای الله اون الله کے رب العالمین رب عالمیان است حمد برای خدا بر نصرت مرسلین و هلاکت کافرین لذا این بود خلاصه سوره مبارکه صافات که سبحان ربک رب العزه عما یصفون این رب العزه از اون چیزی که مردم براش بیان میکنه یصفون یعنی مردم بیان میکنه از اون چیزا پاک است از اون شریک و نائب و فرزند و دختر و همسر و از همه اینها پاک است لذا با او شریک نسازید